صلی الله علی و رسول الله و آل همایونین پاکان المعصومین اللهم رحمنا <سلام> و بحثی که روز عرض شده از به صلاح مسائل مبحث در اصول قرار داده شد از که مبحثی به ثقت در کتب سابقین نرو از زمان شیف به بعد این کیفیت هم در اصول پیدا شد اون هم در رسول متخدمی نشیه متقدمین نشیه هم نداشته. یکی از مباحثی رو که در اینجا قرار دادن که حرض کردم در کلمات ادیارت بزرگان هست، شد این بحث در مست کتاب مرمون نایین تراجعان نایین آزیا این بحث اصولا نیامده که آنهاش هست حجور موافقت الکضامیه من استاد متعرض شدن و بالاخره گفتیم متن بحث و کلمات قرار بدید. از این جهت متعرضی ای بحث شد هرچند که قدیر نحسن اصول متأخر به این باور بودن که غیر از جهت جری عملی و انجام دادن و غیر از جهت اعتقاد به عقاید دینی و غیر از جهت قصدقور و در واجبات تعبدی غیر از تمام اینها ما باید این نوع موافقت الاتزامی. یعنی بنابرای که مثلا این واقعیت داریم این حکمه این وظیفه ماست غیر از عمل التزام هم بدیم اسمی باید موجود موافقت انتظامیه یا وجوب انتظام به این موردی که محل به استرادگیاریان اصل یا غیر اصل و در این کتب و اصولی اصول دیروز دو مورد براش نسال زدن همونطوری که از اوارف محکم استاد در مصباح اصول خوندیم یک موردش رو دیروز توضیح هست کردیم و اونجاییست که در اطراف علم اجمالی اصولی که بخیم کنیم اصول مصبته باشه نه تقسیدی الزامی و اولان این یه بحثی که در اصول متاخل شیعه شده و خلاصه بحث اینه خیلی بازی بروشن میگن در اصاف علم اجمالی و اصول جاری نمیشه چون علم اجمالی از این مثل علم تفسیلی هستم چون که با علم اصول کاری نمیشه با علم اجمالی هم نمیشه سوال اینه که آیا فقط اصول ترخیصی جاری نمیشن یا اصول ایزامی هم جاری نمیشن چون دو جور اصاف علم اجمالی گاه اصل ترخیصیه مثل اینکه هر دو طرف ساره پاک بودن و قطره خون توی یکی از این دو زرف افتاد اینجا مشکولی ای اینه که استثاب تهارت در هر دو زرف جاری نمیشه این استثاب تهارت استلاحاً اصل ترخیصیه با علم اجمالی به نجاست ما دیگه استثحاب تحارت جاری نمیشه اگر استثحاب قرم نداشت اصالت تحاره اما اگر در سابق هر دو نجرس بودن میدونیم بیه کشون باران خود پاک شد تشکیز نمیدیم اینجا این بحث آن دکایت استثحاب نجاست چطور؟ در دو طرف جاری به چیانه ازدهی گفتن استثحاب نجاست جاری نمیشه چرا شن معارض با علم اجمالی است؟ چون میدونید هیچ پاکی ازده این گفتن نه ندارد نداره از نجاست چون اینجا الزام تکلیف مثل اون مترخیفی نیست و ما با استثاب نجاست علایین چون از هر دو اشتناب میکنیم پس مانه از استثاب نجاست نداریم هر دو رو جاری بکنیم و علم با به تغارت اهده ما منافی نیست و این خلاصه این نظر بحث حده ای آمدن این بحث رو مبتنی کردن بر موافقت التزامی و حل کلاب اونجاست اگر موافقت التزامی لازم باشه یعنی التزام انسان در اینجا استثاب جاری نیشی چرا؟ چون من التزام بدم هر دو اینا نجست هم سابقا نجست همه حالا نرسه پس اینایی ای که پاک شد و یک ای اینا پاک شد. من بنا بگذارم به این که هر دو انا اینه از این که عملا انجام میدن عملا از هر دو انا می میکنم التزام بذارم بگم تعبوت دارم هم این انا نجبسه هم اون انا ملتزم بشن اگر بخوام ملتزم بشن خب با علم اجمالی بین که یکیش پاک شده نمیسازه اما اگر موافقت التزامی لازم نباشه خب من عملا هر دو ترد میکنم معامله نجس با هر دو می کنن. هم از این اشتراک می کنن هم از اون دیگه می گوشن شد پس این نقطه جریان افتس ها یعنی جریان اصول در اصلاف علم اگر اصول الهزامی باشن نه ترخیصی گفتن نقطه اش اینه موافقت التزامی لازم باشی یا نباشه اگر موافقت التزامی لازم باشه اصول جاله نمیشه شه اگر موافقت التضامی جاری لازم نباشه جاری میشن این سر اون مسئله و به این مسئله برمانه این یه مورد بود مورد دیگه در دوران هم بین محضوره فرض کنید که کسی در برقی خودش نسیناسن نزد کردن روز جمعه ساعت فران صداره بدهم یا ندهم حالا نسیناسیش حتی خودش این تونه بکنه بدهم یا ندهم در آن امر شده بین محظوره این که صدقه دادن واجب باشه یا نه اصلا جایز نباشه حرام باشه خب اینجا بحثی دارن که آیا تخیر جاری میشه یا نه چون بالاخره یا انجام بده یا نده اده‌ی اصالتو و جاری میکنه مرادشون از اصالت تأخیر اینجا که در آن امر بین محظوره این باشه نه امکان احتیاط باشه نه امکان مخالفت قطعیه مرادشون اینه نه امکان موافقت قطعیه هست نه امکان مخالفت قطعیه اینو میگم در ضمن بریم منظورن نه میتونه قطعاً مخالفت ان نکنه میتونه قطعاً موافقت بکنه هر دوره نمیتونه. یا یا دو نمیتونه نمیشه بلکه یا صدقه میگه یا نمیگه بلکه همین دو است امکان مخالفت قطعیه یا موافقت قطعی وجود نداره اینجا حضرات اسال رو جاری کردن اون اسال تطهیر معروفینه به لحاظ رتبه اصولی هم مثل اساسال اشتغال یک فرعی نداره. رتبهش بر اساس البراعت مقدمه است. چون اصول هم یک تحصیلی دارن به حسب رتبه از استصحاب معخره بر براءت مقدمه است. این در بحثه اول مثل استصحاب جایی میشه اگر نبود. اگر اساس تاخیر یا اشتغال، اساس تاخیر با اساس اشتغال تلازمش احتیازی در یک واحد واحده. فردش هم بینه که اساس الاختیار جوی که احتیاط امکان داره اساس و تخیر همون فرد احتیاط امکان نداشته باشه ای هم هیچ فردی روشنشتون به لحاظه بندی و اصولی هم رتبش بعد از استطحابه و قبل از اساس البرائه اون وقت بعد از این دو سن اساس البرائه میاد بیگه <تصفيق> اما اساس البرائه را قرار داد کردم اونم به این معنا عرض کردم یک معنای اساس برائت همینه یعنی اباهی از دو یک معناش اینه نفی براءت از دو سرق. چرا گفته شده چون ما متصوونه که اساس تاخیر نه اساس برای کله واه حالا یک توضیح امروز عرض میکنم تفصیل جرمعل خودش خودشیش البته تاثیر خیلی کم میذاره در اصول خب اولشون بحث ای اون وقت اینجا اینطور یا اساس البرایه تحبیر شما یا اساس تخییر تغییر من دادا حالا اساس برای این من که تو آیا واجب صدقه اصل برایه صدقه حرام اصل برایه درسته اساس البرایه هر دو گفته شده وقت واسه میشه اساس البرایه میکن ما مواتقه اینجا اساس تخییر جاری میشه که اصل نست که من مخیرم خب اینجا این بحث مفرح شده که اگر شما قائل به اساتو تخییری آلا اون تحریر یا اساتو برایه این آیا جایی میشه یا نه ادوی گفتم بله این تابع اینه که موافقت التزامی واجب باشی یا نباشی اگر موافقت التزامی واجب باشه که من باید منتظم بشم به یکی از این دوتا یا اساس برای اساس یا اساس تاخیر من اون اساس تاخیر ما رو روشن‌تر تا اون اساس برائت ملتزم بشن به اساس, اساس, اساس تاخیر اینجا چون اساس تخییر که حکم واقعی نیست و نمی‌تونه ملتزم بشم و جاری نمیشه چون میدونم یکیش هست دیگه اما اگر موافقه التزامیه لازم نباشه خب میشه ملتزم به اساس تاخیر بشه چون شده متزن نشتم عملن مخیر باشه. پس سناورین یا اون دو تا براعتا با اون تقریبی به شما فرمون که زهاب استاد اون براعته اما به نظرمان اصلاحات تقریبا توضیح شه اجوانه نوز ارز این هم راجع به این دو مسئله مرحو استاد نه بیان این مطلب چون بنا سیم اولارم مطالب ایشان اشاره اول اولا راجع به خود موافقت التضامیه در مناقشه مطلب فرمودن به این که بله اولا فرمودن که در اون صفحه 55 و 5 جلد 7 به که ترتیب آم ایشون میگن که از عدم وجود موافقت التضامیه راست هم هست, هم هست هیچ دلیلی برای موافقت التضامیه نداریم درلم یا در علیه ذیل منشر بلا بن من از همین راه خودشون درسته که از شبر از هر ذلی نیست مثلا نیاز به این نیست چین چیزی رو ما اصولا در دست نداریم که ما باید التزام داشته باشیم اونم مخصوصا در مجاری و اصول این آقایان بزرگوار غالبا در ذهنیتشون اصول رو فقط به وازه عمل گرفتن چون به لحاظ عمله میخوایم بگن عمل تنها کافی نیست یا اضافه عمل باید التزام هم باشه ما یه توضیح از کاری مفصلن یه تا دیگر کنم بزاردون بحث بشیم اصولی که اصول هم به لحاظت عمل نظری به اون مسئله التزام و عدم التزام نداره اصلا حقیقت اصول که من میخوام تکرار کنم یه نوع ادباه نفسه یک نوع ایجازه یه نوع ایغاهه مثل امارات نیست که اخبار باشه جنبه حکایت و طریقیت داشته باشه این دیگه شرحش بذاشت من تقرار ده. و عرض شد که در اصول کلا کنه ابداع نفسه و تنزیله در کل اونها لحاظ وجود داره ظاهر امارات که لحاظ رو تو استصحاب بردن اندو بزد و اون حالت رو ثابت داره در غیرش نیاده ما لحاظ همیشه هیچ فرمه میکنه چه اصول تنزیلی چه اصول غیر تنزیلی توضیحاتش مفصل از در که نیست بله در اصول تنزیلی تنها اصلی که گفته شده در شبهات و حکمیه وارد میشه جاری میشه استثابه این مشهور بین احلام و درست هم از بنابر بنابرای مشکورشون تنها اصلی در شبهات و حکمیه جاری میشه و ما انز کردن غیر از استثاب هم به نظر ما چون قیاس رو هم ما رتوش رتوی توی اصول عملی میدونیم و اصول تنظیر قیاس رو با استثاب یه جور میدونیم آنان ظاهرن اماره گرستن اماره غیر معتبر که آن شرحی داره من چون تا دوی شرح دارن که حال شرح ندارم ما قیاس و استثاب را از باب واحد میدونیم و هرزان جزو اصول تنظیری میدونیم قیاس هم ای خب در مذهب شیعه مسلمان حجب نیست استسحاب هم در شبه حکمیه که شما حجب نیست نه به برشی که استاد فرمونده اصلا فی نفسه حجب نیست و از کردیم قیل از این دوتا در اصول ای که به در بخور در فیل اساس تهاره هم در مواردی که شبه حکمیه باشه جایی میشه اما مواردش کمه چون اساس تهاره تا به شبه هم داره شمولش شاهیه سابقا کردیم ما غیر از این سفه به نظر ما البته به نظر آیون فقط روی استثاب رکسن چون اساس داره موردیه فقط در سهارت قیاس رو هم که اماره به رو ماتبر میدونن پس در اصول تنزیلی فقط استثاب پیش مهمه که اون هم پیش ما به نظر ما در شباز و میشه اما اصول تنزیلی در موضوع زیاد داریم قاعده سوق مسلم هست قاعده ید هست زیاده. حتی به نظر با قایل قرآن همینطوره یه اصل است در شباعت موضوعیه نه در شباعت حکمیه این توضیحاتش چون در تمام اینها یک این نوع لحاظه در اصول غیر تنزیری هم مثل اشتغال و براعت اون هم لحاظه اصل براعت که ما قبول نکردیم مشکل داشتیم به اعتقاد ما اصل براعت با من اصل عملی ندردیم توضیحاتش چند مطر رو گذاش فقط در این اصول فرق بین اصول احراز محرز و غیر محرزه که فراغانه یکی از فراغاش اینه که در اصول محرزه موضوع رو نظر میگیریم و به لحاظه او لحاظ میکنیم اما در اصول غیر محرزه چون موضوع واضح نیست اون دلیل رو, رو نگاه میکنیم به لحاظه او مثلا اگر گفتیم این سابقا خون بوده حالا خونه سابقا شراب بوده حالا شراب بوده دقت بکنیم شراب رو نگاه میکنیم و حالت سابقه اش نگاه میکنیم به اون لحاظ میگیم هنوز شرابه دقت می‌کنی اما اگر میدونیم خون در یکی از این گوانا افساده نمی‌تونیم بگیم این اناق خونیه ملاق خونه نمی‌تونیم بگیم اون انا دیگه اینطور نمی‌داره توی موضوع نمی‌تونیم تنظیم بکنیم کنیم اشتنر عن الدم عن ملاق الدم جاری ببینید لحاظ رو گردیم رو لسان دلیل و حک اگر رو لسان دلیل و نگاه کردیم میشه اصلا خیل کنگیلی اصلا خیلی اگر رو خود موضوع نگاه کردیم من این مثال رو چند بار ارز کردم پس توی یه گوشتی هست شک میکنه که آیا حلال یا نه امام میفرماد بخور این بخور خودش اصل خیل کنگیلیه این جریع عملی اما یه امام فران که دست یک مسلمان گرفتی تا با از دست یک مسلمانی اصل تنزیلیست یعنی این مذکاست این غیرت بخوری در روالیاتی که داریم مثلا کل ما شهکت فیسالاتی که بسید و موضوعی تمزه تمزه فیسالات تمزه این میخوره با اصل غیره تنزیلی اما اگه امام فران بلا قدرکت بل رکت بلا قدرکت این می خورو بحث تصدیلی یه ضوابطی بود ما توضیح دادیم و اصلا هم موارد ویاری داره اصولا اصول تصدیلی نو تصرف در قبیل خیاله یعنی تصرفات قوه متخیل متخیله و اصول غیر تصدیلی تصرفات او به است این دو با هم خیلی فرق وجدانی هم داره غیر وجدانی است پس در این نکته پس در این اصول بحثی راجع به التزام نیست بحث التزام مطرح نیست چرا؟ چون در اصول عرض کردیم یکی از, از فارغ دیگه اصول در امارا تعامل ما با حد الواقع در اصول تعامل ما با حد علم این فارغ اساسی این دوتا چون عرض کردیم این مبانی با این توضیحات ما در این کتاب اولین آخری می کنید هر جا شما خواستین تعامل با حد الواقع بکنید اون امارا اینکه مستقیما حجت ما را همین سر بشین. اما اگه خاصین تعامل با حد علمتون بکنید اون اصله. اصل معیارش میونه. و لذا مثلا فروع علمی یونان تا حالا که در این اوربه چند تا فروع علمی شما رو خیلی از جز مسائل مشکل اوربه حساب میشه. شما باید سهر بودن گفتید سه این قاره که من در اثر نگاه به خیلی راحت میشه. شما در اصول کلا اول حد علمتون رو ببینید. چه مقدار داریم؟ دوم چی میخوایم؟ ببینید از اون علم توی به مخصول برسید یا نه؟ این میشه اصوف مثلا اگر گفتید من میدارم زید در سالتی زنده بود خیلی الان زنده است. الان میخوایم بگین حیات زید باره اما الان اگر میخوام بگیدید زید دوتان بچه داره رب چش مشکله؟ زید زنده است، دوتان بچه داره این استلاحا اسمشان مصبتات این مثبتات و اصول یعنی این محلوب شما در باقی اصول با معلوم شما نمیخوره رفت به هم پیدا نمی کنه اگر این دوشان به هم رفت پیدا کردن بله حالا اون واسه خفی باشی جلی باشی این حرفاش در محل خودش مصطفیت و اصول انشاءالله متعرض میشی خوب دقت بکنید شما در اصول دائما حد دول علم نگاه میکنید. طبقه حد دول علم و اصول خصوصه وجه اما در باب دربارت انتقال ابدا نیست شما با واقع انتقال بده لذا در باب اصول هر تا اولی اولی اصول شما جهل رو واقع دارین این حرف اول اصوله ما همین تازی خوردیم اگه یادتون باشه مردم عسد آقای توضیح داده در امارات هم همینطوره جهل به واقع در سحاح شده ما این توضیح دادیم در امارات لحاظ نشده جهل واقع این توضیحش گذاش منفصلات این فارق بین اوص و نزار ما چرا از این واس فارق دیگه اصول رو میشه معقول ثانوی در اصطلاح و اصول گذاشت مثل معقول اولی و ثانوی در اصطلاح فلسفه و منطق رو میشه اصول معقول ثانوی در اصطلاح, و اصطلاح و اصول امارات و معقول اولی در اصطلاح و اصول در علم اصول معقول اولی و ثانوی امارات و اصول است شما مثلا میگه آنی مثل ذن چون به واقع رسیدیم این معقول عادی من نمیدونم دونم ملک ذیل هست یا ببینید من نمی تا گفتید من نمیدونم یا بیا این کارو بکن مثلا بنا به نیست بنا به هست این میشه معقول ساده این فواره از تواریخ زیاد ما تفسیری که داریم فواره خیلی زیادی ما به این اصول و عمارا وسوشیم یکیشم اینه پس در اصول حالا استاد که فضانشون و کلمات مراجعه بفرمایید در اصول اصلا بحث انتظام محرم نیست بحث ابداع نفس اصلاً بحث انتظام محرم نیست ما انتظام بدیم لذا باید ببینیم این ابداع نفس یک زوابز خاص خودش داره روشن شد اون ابداع نیاده نمیاد مثلا اگر شما میدونست که هر دو اینا نگیز میتونه نفس شما ابداعو بکنه هنوز هر دل نجدت نداریم. بسیاری اینها از موافق انتظاری باشه سوال اینه اگر هر دل اینا پاک بودن شدند میدونی یکیش نجدت شد. میدی شما نقصیم تو بکنه که هر دل اینا پا کرد. پس این دو چیکیش خب سوال اینه که اون تراششو همیشه اوردیم. بسیاری ابداع، بسیاری موافق انتظاری دی. شما دیدی هر دل اینا نجدت ندارن. اینکه چرا بود؟ هر دو اینا دست نجس یا خطر قطر خون توشون بود یکیش باران م نمیدون کدوم یکی آیا باز نفس شما این ابداع میکنه خوب دقت کنه؟ نفس شما میاد این ابداع رو بکنه بگه چون نمیدونی پس هر دو انا هنوز نجسن خب این سوال میاد پس با علم تو که ییش پاک شد ار ا کن با علم تو که یکیش پاک شد اونجا را میخا و لذا به نظر میرسته که اصلا این مسئله رفتی به مسئله محافظتی التزامی کلن نداره اصلا محافظتی این که واجب میسید که دردی نداره بلا اشکار و اصولت در این مسائل جای بحث موافقت التزامی نیست نکته فنی چیز دیگریه مثلا ازده گفتن نکته فنی اینه اگر ما اجرای اصول کردیم مخالفت قطعیه و عملی لازم آمد نمیشه اما اگر مخالفت قطعی یا میشه این تقضی بخونیم پس اگر هر دو سابقا پاک بودن بخواید استثار تهارت بخواییم مخالفت ها تقییم نیزه که یکی نجیسه اما اگر هر دو نجیس بودن از هر دو اجتناب بخواییم مخالفت قطعی یه لازم نمیان فوقشی پیش کردیم اون دیرگاه این روشن شد اونا آمدن گفتن مئیار در جریان اصول بحث موافقه از نیست مئیار در جریان اصول مخالفت بیاد یا نیاد اگر مخالفت آمد اصول جاری نمیشه اگر مخالفت قفیه اصول قفیه نمیشه نمیشه با بستر اینه اون کسانی که, که گفتن نقصه اینه اگر مخالفت قفیه عملی لازم آمد اصول جاری نمیشه من دیگه بهش سوال سوال در این اناء ورس سوال قرار با علم من به میلیارد تا هیما مخالفت نمی‌کردم اما من بیا بعد هر دو اجتناب بکنم کاری نشه مخالفت نکردم هم از این اجتناب کردم این سابقه نجس بود هم از این اجتناب کردم که اون یک چیز پاک بشه من مخالفت نکردم که دقت کن اون میلیارد رو مخالفت گرفت چون میلیارد مخالفت شد گفتن اگر هر دو مثلا یا تحضیلشی مختلفه اگر اصل جاری در اطلاف علم اجمالی الهزامیست اگر الهزامی جاری میشه اشکانه اگر غیر الهزامی ترکیسیست جاری نمیشه. چون در ترکیسی مخالفت در عملیه لازم میان در الهزامیه میان پس اون بس ریشه دیگری داره رب چیه به موافرات نداره بسیه به این بحث مداره و اون ریشهش به نظر ما اصلا باز اینم نیست آها مثلا استادهای خودی ریشمون گرفتن توضیح میدن ریشه اون نیست نمیخوام نوشتیش وارد اثر اینو چه به اون داد راج به اساسو تخیل مشکل چی غیر از اساسو بران کنده مشکل راج به اساس تخیل میگن اصل عملی باید تاثیر داشته باشه وشه. شما مخل اساس تخیل جاری بشه یا جاری نه مگر مخیریز تخیلن مخیریه یعنی اساس تخیل معنا داره که وقتی شما تخیلن مخیری چون درخره ساعت ده یا صدقه میگی یا نمیگید دو کار ذکارو چی میگی نمیشه با تقریر تکریری تقریر تکراری معنا نداره لب واقعاً چی معنا بکن تخیل بگیم شما اصلا بر حسب ادعا اصل عملی با عنوان اجرا ادعا. ادعاه نفس شما است. عنوان تخییر بکنید میخواستم میخواستم جا من خودم عملاً مخیرم ذاتا و تخمیناً خودم مخیرم درخره ساعت ده صبح یا صدقه میدن یا صدقه میدن قیل از این دوستا تطریر نمیشه یا این هر اون هستی که بالاقره این که از میشه نه از کده ساعت ده نماز بخونه یا نخونه متحریر بالاقره عملا یا ساعت ده نماز میخونه یا نمیخونه یه صدقه دیگه در بکر پس از ساسا تقدیر شما جاری میکنه بالاقره این کار که باید میشه به عبارت اخران مادام تغییر تکوینی تخیر, تخیر تعبدی اصل عملی چه خواهی چه نقطهی درش داره یعنی میکنون میگین ابداع نفس چه ابداعی میشه نفس رو کنه جایی که تغییر تکوینی هست پس نقطه اساس اصاز تخیر اونه و نضاقه اصاز تخیر جزو اصول نیست چون مورد اساس تغییر در جایی که در آن به بایی محضور اینه عملا من یکیش واقع موافقت قطعیام ممکن نیست. مخالفه قطعیام ممکن نیست. هرجوش ممکن نیست دیگه. عملاً هم یکی با خودش اساس اساس اون اساس‌تخیری شده، لحظ نمی‌کنه، اساس‌تخیری باش یاری می‌کنه. چه نقیضی در اساس تخیری؟ اون اشکال اساس تخیری اینه. نه بحث موافقت التزامی را گیرش در تخیری. این مرجوزه مون، اونم مرجوزه مون. اینا ردتی به بحث موافقت التزامی ندارن. بعد مرحوم استاد جلدی که از کردن در صفحه پنجوشی چون خواهد بگن هم بار نمیشه و سه تا اشکال میکنن امکان مراد القائل یعنی سه ترز میکنن در مراد قائل و امکان و امکان بعد ایشون هر سه زیاده میکنم من شما خیلی مطلب این آقای مقرر شد خیلی مطلب مقرر بر ما روشن نشد از خیلی اهلی نیستم که یه رضا اول و ثانی و ثالث چون این روحیه ندارم کلا خدا آن مراجعه کنم چون خیلی محسن یه دست نعمر اگر اون مواقعات التضامی رو لازم بدونیم چرا تأثیر داره چون لازم ده و نکته فنی هم نیست بعد فرمونه که سیعه کل کلام و درباره استثاثام بحث هم محکن رو محله آقایی که چاپ کردن این جلد رو نوشتن در صفحه 404 همین جلد البته در صفحه 404 به این چاپی کردن درسته من هست متعرب اجرای و اصول در اطراف علم الهیونی شدن اما اون بحث تمام بحث چه راجع بشه به اصول الزامی در صفحه 406 404 این برایی به دار عبادات ایشون واسه بخونن ها را لان مانین کانال حکم الزاهری مستفادن من الحصول ت... تنظیری الجاری فی جمعی اطراف علم اجمالی مثل اصحات و نجاست اینجایی تابیل کردم مراقشی دیم فمن المحقق و نائنی جریانها فی جمعی اطراف این بحث و ابرده عبوله... حالا یاد استثابتار یاد استثابتار جمیع اطراف، این جمیع اطراف سوا اون استر زمن مخالفتر قطعیه املا اینجا اینجور اینجو تحریکم مرادشون استر زمن مخالفتر قطعیه. یعنی اون اصول ترخیصی لحظا به علم چون اگه بگیم سابقا پاک بود اینم پاک بود با اون علم اجمالی به نجاست نمی این استر زمن مخالفتر قطعیه شد اما املا املم یستلزه این لم یستلزه یعنی هم که دو طرف سابقا نجاست بودن استثار بغای نجاست بکنه این مورد عبارتی این شاید فمن المحتق و نائمی جرعان ها في جمعی استلزم مخالف از القطعی است. و مازکر و فی و جزاله ان المجعول في بابل اصول تنزیلیه و البناول عملی و الاصل و به احد طرف شک الا انه هو واقع. حالا ما به این تعبیرات گفتیم به سهو تنزیل یقین یک نوع توسعه در یقینه یعنی الان بخوام توضیح بدم برای مقاشان توضیح میدم حتماً دیگه خیلی تکرار میشه سیمتن او فی جمیع الا اطراف یعنی اینکه شما بخوید این دوتا تا نجسن با علم به فطیره اهل ایمان نمی‌سازه این دوتا تا طاهرن با علم به نجاست رہنه فهموند بزنیم چه اینکه که انبوه و الواقع فیمتن او پی از لایو قلل بنا و تنظیر علا خلاف العلم علم بقید کنین نقطه چیه؟ ایشون میگه نقطه اینه که تنظیر با علم اجمالیه به خلاف نمیشه اصلا من ارز کردم کرارن و مرارن چون اصول عملیه در موضوعشون جهل به واقع خابیده بقید کنیم در اصول عملیه در موضوعشون جهل به واقع خابیده چون در موضوعشون خوابیده دائما اصول عملیه محدودن به علم به خلاف اصول یعنی تا علم آمد یه اصول خایی نخوایی جانیه میشن منطقی میشن چون محدودن به اون اصلا دارن اصول یعنی کل داشته این لکه حتی تعلم با آمدن این علم دیگه تنظیل معناه داره اصلاه اصلاه اصلاه داره و لذا ما ارض کردیم مهیار کلی حکم ظاهری هم همینه. هر حکمی در لسان روایت محدود به علم به این نزارید هر علمی هر حکمی محدود شد مثلا به نص یا به تشریح یا به انشاء اشاره این حکم واقعی. این قاعده کلی چون اگر یاتون باشه کله چیز لکه حلال حتا قاعده انه حرامه ده که پای یاتون باشه هر تو احتمال بده یکی اینکه کله این لکه حلاله ظاهری باشه یکی اینکه حکم واقعی باشه که واقعا هر چیزی خدا واقعا. اگر تقی که این قاعده ای که ما گفتیم کل چیزی ان که هر حکم ظالمی نمیشه حکم واقعی بشه. چون حکم واقعی نمیشه به علم منعقید بشه به جلد الهی حقوق واقعی تابع شده. مثل دائم نشه اضافه. اون چیزی که به علم منعقیده حکم ظالمیه یا قاعده کلی. مثلا کل بشه این مطلق حدیث متصل به صدوق نه که جای دیگر نشه نشود ارزش علمی خیلی نداره. کل و شاین مطلق حتا يرد فيه نهریان این جو مرا این به درد راحت میخود نهان اینطور اصلا واقعیه اگر حتا بعد از حتا علم آمد این معیار کلی این زاویه فراموت تو هر جا حکم مغیا شد به علم به خدا این میشه ظاهر هر جا نغیا شد به واقعیت خودش مثل يرد فيه نهریان حتا مثلا در آیه مبارکه که آیا از تمسکون فی البيوت حتا یا تا هون او... بیان یاد حکم بیاد او او یا که اینو حکم فعلان حکمشونی اینه تا خداوند سبیلا جون قرار بده زابطه هر جا حف آمد مغییه شد به علم دخلال اینجا اخوز هر جا حف آمد مغییه شد به این واقعیه و این مترق حتی تعالی این حلال حتی تعالی و حرام حتی اخوز ظاهیه احلال لکن می احلا از اشتراکه ها تخلیف نایی نیست فهمه انا اشتراکه هایی خلقه هایی داریم اما احلا نایی میشه ولی ما هم کراران از کردیم خیلی من که در کلمات و علمات و معاصلین ما مثلا استاد مهای نیامده ما آمدیم گفتیم یک حلیت واقعی داریم که هر چیز در واقع حلاله اسم میرم گذشتیم برای که از قائد حل یک حلیت ظاهری داریم اون حکم ظاهری است اسم رو میشونه اثار و چند بار هستم در کلمه هست ساب جواهر و قصد آیه حکیم دیگر آن مروم ناییم گاهی قائده حل منه اثار حل گاهی اثار حل منه قائده این در کلمه هستم شده. چونی اصطلاح نبوده به نظرم این اصطلاح را اجمی کردن خوب بود قاعده هم یعنی حدیت واقعی تو بگیم هر چیزی در زاسه خدا رو حلاح قرار شد مگر حرام شد کل این مطلق حتی یرده بیه نهیون اما اثارتون هم حدیت ظاهری واسه تحقیق من این اصطلاح لبیه که به کار برده شده تو کتاب ها به شواهد معلوم میشه که ما منازشون ظاهری تا واقعی اگر این کار رو به کار رو بودن خیلی خوب بود قاعد اصال یعنی برای واقع اصال اصال هل برای ظاهر و لذا اصال کردی ما قاعده چهارت نداریم که خداوند هر چیزی در واقع به واقع به خودش تاخر خلف کردیم این نداریم چیزی اما اصال تو چهارت داریم ما هم قاعده هل داریم هم اصارتون حض داریم قاعده تهارت نداریم اما اساس تهارت داریم چ این فرق دارین مثلا اساس ادم من توضیح دادم، اساس اسعارتون ادم واقع نیست قاعده ظاهری اساس ادم مفاقه نیست اگه شرک کردیم زید بچه داره واقعا بچه نداره ما اینراه ن Elizabeth خور واقعا بچه نیست اینکه واقعا نداره مثلا قاعده ای عدم نداریم، اما اساس اول عدم داریم. یه قاعده باشه که اگر کردیم نیست در واقع نیست، هم چیزی مناسب. اما در علم من نیست، در ادراک من برایش دیگری. چون من صورتی از بچه برایتون در زن میام ازید. میشه همون صورت ذهنی شد زنی درسته؟ پس ما بین این گوشه فرق دیداریم. بعضی از واقع، بعضی از زودریا. هم. میلیارشان در مقام اسفاد انجام می‌دهیم. من منون این حرفشون اینه اصولا تنزیل با علم به خلاف نمیشه میخواد مخالفت قطعی بیاد نیازی ما دنبال مخالفت قطعی نیستیم دیاز میگه آقا این دو من علمم پاک شده نمیشه این تنزیل نمیشه اصلا من میگم هر دو پاکن یه بیچایشی شده تنزیل میکنه که هر دو پاکن. با باجوازات هر دو بازم نمیشه این اشکال ناینی روشن شو اون صد میفرما ما لا ولا صحیح ان نه لا مانع پیر جریان اصول فله اثباب اذا لم خرج به مخالفه عملیه ایشون میگن استصحاب نجاست در دو طرف اشاره نداره این مخالفت مرحوم عینی الان ما مفادی بند کمی حوزه و خراب شده ها وقتی توی بحث مکاسل تا دیگه مطرح شد به نظر مرحوم وازیا مخالفه آقا استاد موافقت با وازیا کردن ایشون هم میگه اشاره نداره استصحاب جاری میشه بلا فرق بین تنزیله لغیرها ادل اصل و مطلقا لا یترتبا علیه الا سبوت و معدام ولا یعخذ بلوازه ایش این به بلوازه میشه حق شده فکل من الاصول جاریه بالعطاف انما یعصبت و معدام بلا نظر و نفی غیره بعد بعد از این کلمه در همین صفحه چار سادشی ولا غیرفی اشکال نداره ما میگیم این استثاب به جاری میشه این استثاب حالا زمشون که بکنیم منافی با پس این مسئله ای علم من به سهارت بشتالن مواغون زبش ولا زیرفی بناعن علامه و تحقیق من عدم وجوب موافقه الانتضامیه این خیلی عجیبه ظاهر این عبارت مسئله را مختلی کردن بر مسئله موافقه الانتضامیه در هم کتابیشون که از طفل چهار داشتید کتاب مثل باقوستان ولا زیرفی بناعن علامه و تحقیق من عدم وجود موافقت الالتزام. چون موافقت الالتزامی واجب نیست لذا جاری میشه. خیلی عجیب. یشود در جهان دیدیم در اینجا جا فرمودن موافقت الالتزامی واجب نیست. ثم ملوتنزل نا. تفهیم هندوپنج. لوتنزل نا و سلام نا وجود موافقت الالتزام. و لا یتراتو علی مازاکری اون من اسامه. عجیب. اینجا میبینم این اسامه ولش بار نمیشه. اونجا میفهمند نه هر بنوان این مطلب مطلب نه. من متفق نشودم آنه مراجعه کردن بعد اون مسئله واضحی بود به خوشحال خوشحالش در از این مرحب پس در مقام این است که اصلا اون دو تا مسئله و اما مسئله تخییر هم ما توضیحا هست کردیم این تعبود تعبد و اساس تخییر به نظر ما ما نقطه شد دائمان از نقطه شیده که باید تعبود چون امر واقعی نیست امر اعتباریست این باید نکته داشته باشه ولی این نکته برای یک مراحل مثلا متختیر باشه مثلا چرا بیاد جهد اصلاحاتو تخییر بکنه جهدش به نحوه اصل عملی چرا بیا جهد بکنه نه به نحوه واقع چون واقع که نیسته به نحوه اصل عملی به خاطر این که انسان اگر نگاه نکنه به اصلاحاتو تخییر هی شبهه میشه به داخل من چیکار خواهر بکنم رو انجام بدم یا ندارم عملا به داخل یکی انجام از اگر اساس و تختیر رو شارع جر بکنه به این نقطه که انسان در حین ارتکابه اون روز جمعه که حس بکنه خلاف شارع نکرده وزیفه انجام داده نه محابقه که انتظامی یعنی حس بکنه که تزلزل نداره بالاخره من الان هست یکی از این دو کار بار انجام شارع هم به معنای اصل عملی از من خاطر نه به معنای ام... اماره من یکی از این دو تار انجام بدم لذم ما هر سه تا تخیر دارین نه دو تا یکی تخیر واقعی یکی تخیر ظاهری یکی تخیر به مستوىی اصل عملی تخیر ظاهری غیر تخیر اصل عملی. این س... این اختیار که من بده تخییر قال بشی میشه تخیر ظاهری نه این ظاهری این به مستوىی اصل عملی سه تا تخییر میشه دیگه من الان اشاره اجمالی که میخوام بدون بحث و بارز بشه میشه بحث قتله رو که استاد مفرهر خداوند قطع قطعه‌ای که از کریم با چون مرحوم شیخ جعفر کاشف در کتاب کرشفضا به مناسبت تفسیر شط ایشون قطا رو هم خارج کردن که البته شو جذب شیخ متعرض کلام ایشون شده این بحث قطع, قطع, قطع یکی از مسائل بحث قطع قرار یک در اصول متأخر شیعه و چون اکثرشون حجیت قطع و ذاتی میدونن خلافاً از شیخ گفتن نه چون ذاتی صلات های از جوهر پس نهی از قطع قطار امکان نداره، ممکن نیستیم قط قطار ها حوجت نیست.ته هم وا بحث تو قطع قطار برای خودش و بر دیگران ترتیب با آثار دیگران با اون معامله دیگران با اون این بحثی شده ما در بحث حجیت قط گذاشت، حجیت قطع ذاتی نمی بینیم. کاشفیت قطع با عین قطع مییم زات قطع میه اما حجیت رو ما مهم اون نقطه اساسی ما، جیت رو دارمدار کاشفیت نمیدونیم اشکال ما با در این رسمت دارمدار کشف نمیدونیم زمینه جعل حجیت هست اما دارمدار کشفی آقا این زمینیت دونی که حجیت دارمدار تو چی که خیلی با چند روز ما چند هفته ما انسر کردیم آقایان دیگه تکرار نمیدونیم و لذا خود حجیت ته در احکام به نظر ما یک امر عقلایی است باید یک ذوابت عقلایی پیدا میشه. اما ما از که فقط قد حجتی است فقط اورث مینان و علم عرفی یعنی وضو این سه تا به یک مصابه و هر سه اینها این حجیتشون منوط است این که اینکه از سروغ عقلایی پیدا بشه یعنی لا اقل 90 درصد مقدمات باید عقلایی باشه ده درصد هم خب اشخاص فرق میکنه خصوصات افراد فرق باید مقدماتش رو اقامه میکنه که عقلایی باشه اما قد یه از پریدن کلاق علم پیدا میکنه مثلا نماز جمع واجبه این اصلا متعارف نیست این به نظر ما جای بحث داره کنار ارز کرد این چینی انسانی رو متعارف این روز یک نوع حالت روانی میدونن یک مریض روانیه که از پریدن کلاق برای شما پر پیدا میشه بکن. این به جای این درسته اصولی خوب بود یک جایی درسته یک علاجش بکنن و جای درسته اصلا ما مناسب نیم تو برسه اصول باشه چین افرادی خیلی غیر متعارف هم اصول برایشون قرد قیداد میشه و توضیح ارض کردیم و در مبارس اصول اون جاهایی که قرد مربوض میشه دو شبهات و حکمی باید از طرق متعارف باشه بلکه باید از مخدمات و اغلایی هم باشه و 90 درصدش مقدمات و دلیلشه بگه نقطه‌شو بگی بگی نه آقا من این دیدم فهمیدم که حرفینه واسه این زوائد اصلا طرفش میموت تازه اهل فهمید و هنری نیستید مصدرش میدونید چی کی عمله چی سرش اینه زوائد دید در واقع اصل این قضیه امرش حجیت نداره خودشون ملزموین عمل یعنی عمل نواد بکنه لایحوزه الهو عمل کردن به این قضیه فک به بیه که بله و اصلا هر کنیم در مرحله حجیت و مرحله ای که برمیگرده به شوابط حکمیه اصولاً باید طرحش متعارف باشه 90 درصد مقدماتش متعارف و اعلایی باشه ده در درصدش خدای بله در هایی که در بحث چون حجج همیشه دو بخش داره که کبریه که صغرا در شوابط حکمیه اینطوریه در شوابط موضوعیه اگر مقداری غیر متعارف بود اشکال نداره و اون سر هم اینه که عسکری در بخش حجیت که بخش اصول و مکلفه در بخش شواهد وک هنوز شاره و مقرن تصرف می‌کنه، می‌دونه تصرف کنه. اما در بخش شواهد موضوعیه و تشکیل خارجی، اصولاً بنای قانونی بیانیه که قانون دخالت نکنه. نمی‌تونه قانون بیاد در محفظه این، مثلاً نیت نجس هست، این یک خمر، اینکه خلل سرکه هست. شراب، این نمی‌تونه شاره نیست، اصلاً بنای قانونی نیست، این کوچیکوچی کارها همراه او بیاد. بله، تا نو به این اگه خیلی غیر متعارف که این وقت بهش میگن به علت نکن و اما لازم باشه در شوباهت موضوعی هم مثل شوباهت حکمیه، باید 90 درصدش اوغلایی باشه. این دیگه اونجا لازم نیست. این, این فرق این فرقم اولین بار. در شوباهت حکمیه باید حدود 90 درصدش مقدمات و باشه، اما در شوباهت موضوعی هم. این لازم نیست. اما اگه دردی خیلی لاس بوتس و شدید مبتلاست اونجا هدیت نداره اونجا تازه اظهارات میکنه غیر متوار به خیلی غیر متوار بعد ما دیدیم که انسان است 20 درصد مثلا اوغلایی بقیه رو اوغلایی 30 درصد 40 درصد اصولاً چون شأنش داره اینقدر در بخش شناخت موضوع همراه را هم اما در باب حکم کلا به خاطر مشکلیاتی داره ما عسكري یک قرینه اوغلایی هست که در باب حکم 100 درصد در اختیار مکلف نمیذاره چون حالات روانی مکلب و اعتقادات مکلب و مقدمات ذهنی مقدمات خارجی مقدمات علمی ذهنیت مکلب فرق میکنه اگه 100 درصد در, در اختیار مکلب باید تو الپیدا پیدا بید خب انواع مختلف مکلبین است نظام رو به هم میزن اصلا زابطه اجتماعی رو به هم میزن در بخش اثبات کبرا مطلب درست باید اغلایی باشه در بحث اثبات سو نه مکلب وله خودش اون که خودش تشریف میده مگر که غیر مطارب این هم به این فردا انشالله بحث مقاله اخبارین البته این کتابی که من دارم این چاپی که من دارم ننشده هستم چی کلام و اخبارین جدا نکرده آنوان نزدارم خودشون عنوان بزنن حتما اشتباه رو در چاپ و سالالله علی محمد و